بسم الله الرحمن الرحيم الفاعل الفاعل طار العصفور طار الأمثلة تريد پرنده جرى الحصان ديفيد أسب لعب الولد بازي كارد بسار یعوم السمک شنا می کند ماهی یل صعو البعود می شش شاش پشه پشه ما بشویش می دیم شاشک پشه بش میگن این کلمه در قرآن هم اومده البعوده فما فوقها به معنی پشه هست حالا چه مثال پشتری باشید چه بالتر؟ تاکل البنت دختر میخورد خب به این امثل اگر دقت بفرمایی عزیز من حالا بحثی رو که شما گفتید بخون یعنی البحث بحثی که در مورد امثل توضیح میده چیز خاصی درش ناورده میگه امثلهی که همهشون اومده همهشون جمله هستند و هر ای از اینها تشکیل میشه از فعل و اسم تارال اصفور تاره فعله، اصفور اسم جرا، فعل، حسان اسم، لعبه، فعل، ولاد اسم میگه هر یکی ای از اینا از فعل و اسم تشکیل شده و زمانی که سه مثال اولی رو بررسی کنیم میبینیم که تارا پرید، اونی که پریده چی بوده؟ پرنده بوده، اونی که دویده چی بوده؟ و اونی که بازی کرده چی بوده؟ پس این پرنده بوده که پروازو انجام داده. اسب بوده که دویدنو انجام داده بوده، پسر بوده که بازی رو انجام داده. میگه اونی که فعلو انجام داده بهش میگن فاعل. اونی که فعل رو انجام داده بهش میگن چی؟ فائل خب و زمانی که در در مثال‌های بعدی هیچ فرقی نمیکنه. فقط فرق با امثله سوم به نظر شما چیه؟ فرق مثال اول با سمیثال بعدی چیه؟ اصلا به بحث نگاه نکن احسن تنها فرقی که بین اینها وجود داره فرقش اینه که گروه اول گروه اول ماضی و گروه دوم مزاره ما که برامون مهم نیست این فعل ها ماضی باشند یا مزاره چه فعل ماضی باشه چه مزاره فائل داره پس طار الاسفور جلاحسان لایبل ولاد و توضیح دادیم یعوم السمک شنا میکنه ماهی یلس اول بعود میگزه پشه تاکل البنت میخوره دختر اونی که فعل و انجام داده بهش میگن فاعل ببین یک نقطه هر کاری که تو دنیا انجام میگیره صد در صد فاعلی دار. تو کار میتونی خود به خود انجام بگیره پس میگی خورد برد رفت مرد نشست ایستاد اینا تمشون یکی انجامشون داده. اونو رو بهش فاعل. الفاعل بحثا آسانی. الفاعل قائده هفتم اسم مرفوع تقدمه فعلون. اسم است که اسم مرفوع قبل از اون چی اومده؟ فعل اومده و دل على الذي فعل الفاعل دلالت بر کسی میکنه که فعل رو انجام داده. فاعل دلا میگه دلالت بر کسی میکنه که فعل رو چکار کرده؟ اونی که فعل رو انجام داده بهش میگن فاعل. به همین سادگی المفعول بهی درس بعدی پس فاعل رو یاد گرفتیم اگر اینا رو ترکیب کنیم میگیم طارف فعل ماضی اسفور فائل جرا فعل ماضی احسان فاعل لایبه فعل ماضی ولد فاعل یومو فعل مزاره السمکو یا یلسو یعنی فعل مزاره الباوزو فاعل تاکولو فعل مزاره البنتو فاعل ولی چون کتاب ما لب اینجا همه فائل اینجا همش اسم ظاهر بود دیگه ضمیر مستتر و بارز و بقیه رو اینجا توضیح نداده <تصفيق> المفعول به شد التلميذ الحبل باست شاگرد تناور طوت البنت الثوبة أكل الذئب الخروف يربح السابق جائزة يصيد الثعلب دجاجة يبيئ القصاب اللحمة تورسم شش مثال دقتكم سمثال اول ماضي سمثال بعدي مضارع ولی در اینا ما بغیر از فائل فیلو انجام داده یه چیز دیگه میابیم اون مفعول بهیه ببین در درس قبلی ما رو یاد گرفتیم اون بود کار انجام داد مفعول بهی رو اینجا یاد میگیریم چو قاعدش گوش کن المفعول بهی اسم منصوب وقع علیه فعل و ببین چقدر جالب؟ بگه مفعول بهی اسم منصوبی است که فعل فائل برش واقع شده فعل فائل برش؟ موقع میگیم زید در را باز کرد کی در را باز کرد؟ زید به زید میگن فائل چرا را باز کرد؟ پس به در مفول. مفعول بس مفعول به اونی که فعل فائل برش واقع میشه بله اونی که فعل برش واقع میشه موقعی که میگیم کتاب را خواند. زید کتاب را خواند. و زید که میشه فائل خواندن بر کتاب انجام گرفته. خاندن زد بر چی چیزی انجام گرفته؟ پس کتاب میشه مفهول. اینجا هم. بس شاگر تنابرا. شد فعل مازی. ات تلمیزو فائل مرفو بازمه. الحبله مفهول بهی منصوب با فتحه. تاو تلبین تو ات جمع کرد. پیچید. دختر لباس را. تاوت فعل مازی. موننسه. این تا تایتانیسه البنتو فائل مرفوب آزمه اثوبه مفهول بهی اکلا ذئب و الخروفه اکلا خورد ذئب گرگ الخروف باله گوچرا خب اینجا اکلا ذئب و الخروفه فائل فعل. فائل مفهول بهی یارم حسابقو جائزتا برنده میشه اونی که برنده شده است سود میبره چه چی چیزی؟ جایزه کسی که برنده شده جایزه گیرش میاد ربح میکنه سود میکنه خب حالا یربحو فعل مزاره از ربیح یربحو از سابق اونی که سبغت گرفته برنده شده فائل هست به خاطر این زمه داره مرفوع هست با زمه جایزتاً مفهول بیه هست یصید و ثعلبو دجاجتا سید میکنه روباه مرغ رو. یهسی و فل مزاره از ص مرفوب با زمین دجتا مفول بهی خبر چی میگم مفول به خبر مفول بهی منصوب با فتحه یابی القصاب و اللحم میفروشد قصاب گوشت را. یابی او فعل مزاره القصاب و فائلش هست لح مفول بهی هست. دیگه اینجا انواع مفعول به رو هم توضیح نمیده چون کتاب مال از ابتدایی ترین ابتدایی های دیگه و کتاب خیلی یعنی از ابتدای باید از این کتاب دیگه شروع کرد ولی شما دیگه چون کتابای بزرگتری از اینو خوندی دیگه نیازی نیست که واقعا ریز ریز و چه بشه الموازنه بین الفاعل و المفول بهی موازنه کردن بین فاعل و مفول بهی در این درس قاعده ای رو توضیح نمیده خوب دقت داشته باش بلکه یک موازنه ای یک سنجشی میکنه بین فاعل و بین مفول بهی چون تو در درس دو در درس قبلی ما فاعل و مفول بهی رو خواندیم امثله رو دقت بفرما یجر الحصان و العجله قطف الغلام الزهرة ربطت فاطمة الجدية يسقي الفلاح الزرع قذف اللاعب الكرة حبس الشرطي آل لسا خب ميكشه حسان عجل عجلًا بالاصطلاح قاري همون جهز امونیک پشتش می بندند تا ایر داره خب یا قطف القلامو از زهرت چید پسر گل را. ربطت فاطمه تو الجدی بست فاطمه همون بچه بزر جدی بچه بزرمون که تازه به دنیا میاد بهش میگن جدی یسقل الف از زرعه آب میدهد کشاورز کشته را قذف الله و الكورته پرد کرد بازیکن توپ را حبس شرطی و زندان کرد. سرباز شرطی دوزد را. خوب. اینجا چیز خاصی نگفته. اینجا چیز خاصی در بحث ناورده. منتها یک ای بین فائل و مفعول کرده. اینجا دقت کن. میگه از آن چه که گذشت شناختیم و از امثله سابق هم میشناسیم یک چه چی چیزایی رو هر فاعل و هر مفعول بهی اسم هستن هر فاعل و هر مفعول بهی چی هست؟ اسم هستن اینا خوب دقت کن دو فائل اونیه که فعل ازش صادر میشه فعلو انجام میده سه مفعول به اون یک فعل برش واقع میشه 4 آخر فائل همیشه مرفوعه پنج آخر مفعول به همیشه منصوبه این نکاتو رو باید تو سرت نگه بداری‌ها اینا خیلی ضرورین اینا دیگه دی قابل تغییر نیستن تو هر نحوی اینا وجود داره دقت کن یا یجر الحصان عجلتا میکشه اسب همون ابزاری رو که باش بار میکشن الاغاری میگن هرچی باشه حالا اینجا تمام این پنج چیزی که اینجا آورده بود وجود داره. الحسان اسم یا نه؟ یعنی اسم الف داره. العجله اسم یا نه؟ یعنی اسم الف داره. اسم که فاعل گفته بود میشه فعل صادر میشه و همیشه مرفوعه، میبینیم زمه داره. العجله که مفعول به همیشه منصوب میبینیم که فتحه داره. باقیش هر شش تا مثال به این شکل هر شش تا مثال به این شکل هستن پس تا اینجای کار واقعا شما فائل و مفعول بهی رو فهمیدی؟ تا اینجای کار یعنی در سطحی که این کتاب توضیح داده چون بحث های مفصل دیگه که وجود داره در این سطحی که این کتاب چون ما انشاءالله بعد از این کتاب کتاب بعدی رو میخونیم به ازن الله پس بریم جلوتر المبتدع و الخبر مبتدا و خبر الامفله التفاحت حلوتون، الصورت جمیلتون، الجریو مفیدون، القطار سریعون، النظافت واجبه، الارض مستدیرتون خب اگر در این بحث ها دقت داشته باشی این این بحث ها اگر تمام امثله با اسم شروع میشند تمام اینا با چی شروع میشند؟ خوب، اتفاقات حلوه‌تون. سیب چیه؟ شیرینه. اصوّرت جمیلتون، عکس قشنگه. الجاری مفیدن. دویدن مفیده. القطار سریع. قطار سریست. النظافت واجبتون. نظافت واجب هست. الارض مستديره. زمین هم دایره است. خوب. حالا اگر به امثله دقت کنی همه اینا جمله و, و تمام این جمله از دو اسم تشکیل شدند اسم اول جمله با شروع شده بهش میگند ابتدا شده بهش میگند مبتدا و کلمه بعدی خبری میده کلمه بعدی میکنه؟ ببینی اینجا دقیقت کن اتفاحتو اگر ما حلوتونو حصف کنیم چی؟ تو زین سوال پیش میاد دیگه ولی ما آقای که میگیم اتفاحتو حلوتون گه پرتغاشیری نه آه لذا خبر میده چکار میکنه؟ بله اصورتو جمیلتو میتونیم بگیم از صورتو کبو کبیرتو هر خبری رو میشه داد هر خبری رو میشه در این مورد داد لذا پس در این درس خیلی ساده ساده اومده مبتده و خبر و بحثو مطرح کرده بیا روی قواعد از توضیح قواعد اون چه که در بحثم اومده توضیح داده بشه المبتده او اسم مرفوع فی اول الجمله مبتدا اسم مرفوعی هست در اول جمله ببین دیگه اسم مرفوعی هست پس مبتدا اون هم در ابتدای جمله پس جمله باید اسمی باشه باید اسمی باشه تا مبتدا خبر داشته مثلا موقعی که میگیم در درس قبلی ما خوندیم مثلا شد تلمید و الحبل این جمله اصلا اسمی نبود تا مبتدا خبر داشته باشه اونجا ما دنبال فاعل و مفعول به نگردیم که خوندیم ولی جمله که میگه مبتدا اسم مرفوعی که در اول جمله اومده یعنی اول جمله اسمه پس این جمله با چی شروع میشه؟ اسم به خاطر به این جمله میگن جمله اسمیه بهش میگن جمله اسمیه التف... تمام این شش جمله با اسم شروع شدن التفاحه اسورته الجریو القطار النظافه الارض همه اینا اسمند افلام دارن و افلام روی فعلا نمیاد. نه اون خبری و انشایی اون داستانش جداه. فعلی ها هم جز اگر شما تو نم خوندی جمله یا اسمیتتی یا خبری یا انشه اونو میگی؟ خب اون داستانش جداه. جمله فعلی هم جز خبری ها هستند. بستگی داره کاری به فعلی و اسمی ننداره این اینکه جز خبری انش. اون اصلا تقسیم بندی دیگه است ما جمله فعلیه داریم جز خبریان بعضی داریم جز امشاه ها جمله اسمی هم اینطورند. فرقی نه اون داستان چیز دیگه است. این مقطدا و خبره. اینو نمیگن جمله خبریه. اینو میگن جمله اسمیه. با دارای مکتدا و خبره این خبر با اون خبریه فرق میکنه. اون یا یا نسبته. این خبره خب. پس از توفاه و حلوتون مبتدا مرفو بامه. خللوتون خبرش هست مرفوب بامه ازصورعت و مبتدا مرفوب بامه جمیلتون خبر مرفوب بامه الجریو مبتدا مرفو بامه مفیدون خبر مرفو بامه القطارو مبتدا مرفووب بامه سریون خبر مرفوب بامه از مبتدا مرفو واجب واجبتون خبر مرفو بازمه الارضو مبتدا مرفو بازمه مستدیتون هم خبر مرفو بازمه مصند بله مصند و مصند اله. به مبتدا میگن مصند اله به خبر میگن مسند. چون ما یه چیزی رو به سمتش اسناد میکنیم موقعی که میگیم ات و حلوتون شیرینی رو اصناده به چی میکنی؟ به توفاح لیز توفاحتو میشه مسند اله و حلوتون میشه چی؟ مسند در جمعه اسمیه ولی در جمله فیلیه بر در جمعه فیلیه فائل میشه مسند اله فیل میشه مسند فیل میشه چی؟ مسند الخبر و اسم مرفوع یکوینو مع المبتدئی جمله مفیدتا خبر اسم مرفوعی هست که همراه با مبتدا جمله مفیدی رو تشکیل میده این خیلی جالب. میگه خبر اسم مرفوعی هست که همراه با مبتدا جمله مفیدی رو میسازه جمله مفیدی یعنی جمله که معنا داره الان شما ببین القطارو این مبتداه. سریع خبر مرفوعی هست منصوب نه مرفوع هم مبتدا جز مرفوعاته و هم خبر میگه خبر اسم مرفوع است که همراه با مبتدا جمله مفیدی می سازه خب موقعی که ما قطار رو تنهایی بیاریم مفید نیست ولی موقعی که میگیم سریوند میشه مفید یعنی شنونده رو چیزی حاصل میشه به اصطلاح میری که شما خوندید النظافت و واجبۃ الارض مستدیرت زیدون قائم مض زید است به ما فائده داد به ما خبری داد به ما چی داد پس اگر جمله تمام این شش جمله رو دقت کنیم کلمه دومو که میاریم به وسیله کلمه دوم یک فائده کاملی گیر ما میاد یک فائده چی؟ به حسیل خ... کلمه دوم و همین کلمه دوم است که به ما خبری میده مثلا در مورد سیب به ما میگه که شیرینه اکس زیباست دویدن مفیده قطار سریعه به این دون خاطر این میگن خبر به ما یه خبری میده به ما یه چی میده؟ تمام این بحثایی که بهت گفتن تو بحث اومدن پس ما امروز چند تا قاعده خوندیم یک قاعده و دو قاعده سه و چار شش تا قاعده ان میخونیم این جمله الفعليه رو میخونیم و جمله جمله فعلیه و جمله اسمیه رو میخونیم تمومش میکنیم چون اون بحث بعدی بحث مستقلیه اینا رو البته خوندیم یعنی منظورم اینه که مرتبط به بحث قبلی هستن پس ما تا اینجای کار فائل رو خوندیم، شما یاد گرفتیم، مفعول بهی رو خوندیم، مبتدار رو خوندیم و خبر رو اینجا دو چیز میخونیم که مرتبط به اینا درس اول که جمله است هست مرتبط با فائل و مفعول بهیه که جمله فعلی هست و بحث بعدی مون جمله اسمی هست که مرتبط با چه هست؟ مبتدار و خبر امسلور دقت كن لمع البرق او الذئب يسقط الثلج يشتد البرد اقفي الوارده خذ الكتاب ميجي برق درخشيد او ذئب غورك سيدادت يسقط الثلج برف ساقط مشي ميوفته يشتد البرد سردي شديد مشي اقتفي الوردته بچین شکوفه را خذ کتاب کتاب را بگیر اگر اینجا دقت داشته باشی دو تا مثال اول فعلا مازی اند دو تا مثال بعدی مزاره مضارع و دو تا مثال بعدی فعلا امر چرا چون جمله فعلی مهم نیست که فعل ما چه باشه ما سه نوع فعل داریم مازی مزاره و با هر یکی از این سه تا شروع بشه بیش میگن فعل، بیش میگن فعل. و اون جمله فعلیه هست. در تمام اینا ما فعل و فاعل داریم. لمع البارق، لمع میشه فعل مازی برق میشه فاعلش. عوض زب، میشه فعل مازی زب میشه فاعلش. یاس قطع سلچ، میشه فعل مزارع سلچ میشه فاعلش. یشتاد دل برد، میشه فعل مزارع ال برد میشه فاعلش. اقتفل وردتا اینو شما هنوز نخوندی؟ اینجا اقتف فعل امره در فعل امر حاضر فائل یا در خودش مستتره یا زمیر بارزه مثلا اقتف اقتفا اقتفو در اقتف همیشه انته هست فائل نه تنها در اقتف در تمام فعلای امر حاضر سیغه اول این حالته ازره، انصر اسمع همیشه فائل چیه؟ چون ما موقعی که میگیم اقتف بچین چیدن از کی سادر میشه؟ من موقع به شما میگم بچین همون تو در توشه پس تو میشه فایل، اقتفل واردتا، الْوَرْدَتَ میشه مفعول به. ببین فتحه داره منصوبه که قبلا اینو خوندیم، خُذ الْكِتَاب، داستان به این خود بگیر، انت درش مستتر فاعل و کتاب میشه مفعول به. حالا معنی سلج یعنی برف. بله. برف، یخ حردوتا رو میشه خب کل و جمله ت تترکب من فعل و تو تسمى جمله فعلیه قاعده 11 کتاب میگه هر جمله‌ای که مرکب باشه از فعل و فاعل هر جمله‌ای که مرکب باشه از فعل و فاعل نامیده میشه جمله فعلیه پس این فعلای که تا این 6 تا فعلیک ما اینجا جمله‌ای که خوندیم اینا جمله مفید هستن چون به سامه فایده تام میداد چون به سامه چی میدن؟ ولی موقعی که اینا رو دقت کنیم از چه تشکیل شدند از فعل و فائل و جمله با چی شروع شده با فل. لذا به این بخاطری میگن جمله فعلیه ببین تمام اون چرا که در بحث بود و بیشتر من گفتم پس بحثا رو من از قبل مطالعه کوچیکی میزنم و تو سخنان فارسی من بیاد. خب مخشون شما که داری ضبط میکنی دیگه اونجا میتونی راحت گوششون بکشی پس هر جمله که مرکب میشه از فعل و فائل نامیدش میشه جمله فیلیه حالا بریم بحث در درس بعدی الجمله تو الاسمیه جمله اسمیه به امثال دقت بفرما الدار و واسعتون الجو معتدلون الغبار و اشار مزدحم، الطريق اتطریق و ضیقتون خوب اینجا اگر مثال ها رو دقت کنید تمام اینا جمله های مفید هستن و هر یکی از اینا از چه تشکیل شده؟ از فعل یا اسم؟ یا فعل و اسم؟ از دو تا اسم اولی اینا مبتدا و دومی خبر چون این جمله ها با اسم شروع شده میش میگن جمله؟ اسمیه مبتدا واسعتون خبر الجواب مبتدا معتدل خبر الغبارو مبتدا صائرون خبر اشعارو مبتدا خبر مبتدا خبر مبتدا خبر این هم بکن اگر مبتدا مذکره خبرش ها؟ مذکره و اگر این دار چون در عربی ما دونه محننس داریم محننس حقیقی داریم و مجازی داریم محننس حقیقی اونیه که در مقابلش ماده نر وجود داره ولی محننس مجازی در مقابلش نری وجود نداره از جنس خودش خب بله بله بله اینو در بحثای بعدی میارم مفصل خب پس تا اینجا ای کار تا اینجا ای کار اون چندین حالت داره خب تا اینجا ای کار ما مبتدا خبر جمله فعلی و جمله اسمیه رو یاد گرفتید این خیلی ساده بود دیگه جمله ای که با اسم شروع بشه اسمیه جمله ای که با فعل فعلیه در جمله فعلی ما دنبال فعل فاعل ما مفهول مفهولات میگردیم و در جمله اسمی دنبال مبتدا و خبر میگردیم و یعنی این کتاب گفتم خیلی کتاب زیبا و قشنگیست معنی اینا رو من نگفتم معنیشون رو بگم یا بلدی الدار واسعهٌ خوله وسیع است گشاده الجو معتدل هوا معتدل الغبار صائرٌ غبار برانگیخته است الشارع مزدحمٌ خیاب شلوغی الطريق الضيقهٌ راه تنگ الفأرات مختبئهٌ موش پنهان اخفاء یعنی پنهان خب تا اینجا ای کار امروز کافیست تمرینات حتماً به اذن الله حل کن و از اون هایی که ما قبلاً اینورد مش درس دادیم حتماً کمک بگیر اگر احیاناً جایی جایی تمرینی موندی خب من برای نمازا که میام مسجد حتماً بپرس موفق و پیروس